سر ارادت ما واستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما میرود روید ارادت اوست نزیر دوست ندیدم اگرچه از مه و می نهاد ما یه نها نها در مقابل رخ دوست سباز حال دل تنگ ما چه شهر دهد که چون شکنج ورقهای قنچه تو بر برتوست نمن سبو کش این دیر رند سوزم و بس و ساسرا که در این کارخانه سنگ و سبوست مگر توشان زدی زلف امبرفشان را که باد قالی سا گشت و خاک امبر بوست نسار روی تو هر برگ گل که در چمنه است قدای قد تو هر سر بند که بر لب جوست زبان ناطقه در وصف شوق نالان است چه جای کلک برید زبان بیهود گوست رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یا چرا که حال نکو در قفای فال نکوست نه این زمان در حافظ در آتش حقصه است که داغدار ازل همچو لاله خود رو